بسم الله الرحمن الرحیم بسیدیم به فراز اشهد ان محمدن رسول الله شین خوب میگیم هر خوب میگیم حمزه خوب میگیم اشهد اشهد ان محمد رسول الله اشهد ان محمد رسول الله هارو خوب بگه محمدن اه رو نکشیم نا نگیم محمدن محمدن رسول الله